<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه خير لاصل المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد. الله الله الله الله الله الله ما هفته گذشته که درسمون تعطیل بود کلاسمون تعطیل بود اون میلاد پایانبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الله که بر شما مبارک گذشته باش. ولی ظاهرا آخرین بحثی که این کلاس داشتیم رابطه حدیث و کلام بود نه بعد از اون که بحثی نداشت خب وق موضوع بحث رو تقریبا ما به پایان رسوندیم من فقط یه یک عنوانی دارم از بحث رابطه ی حدیث با کلام که احتمالا اینو برای شما نگفته باشم به عنوان تتمه درس که میتونه یک تنبهی باشه اجازه بدید در سه چهار دقیقه یک عنوان مکمل بگم اقسام روایات کلامی از جهت صدور و اعتماد به آن ما چنین عنوانی که نداشتیم اقسام روایات کلامی از جهت صدور و اعتماد به آن خب اینو من برای شما میگم در چند دقیقه و کارکرد روایات کلامی در شیعه و سنی را هم براتون میگم بعد درس امروز ما رابطه حدیث و تاریخه به طور ویژه من در حوزه اقسام روایت کلامی از جهت صدور و اعتماد با آن ارز کردم که خب میدونید تو هر رشته ای ما جعل حدیث داریم دیگه برحال جعل حدیث یک واقعیتی در تاریخ اسلام در حوزه روایات کلامی هم ما میتونیم روایات کلامی رو از جهت اعتبار و اصالتشون بر دو بخش تقسیم کنیم بگیم روایات صحیح السند و, و قابل احتجاج و روایات معتبر بر مبنای مبانی کلامی جریان ها این یک دسته از روایات که اینا روایات یا صحیح السندن یا روایاتی هم ممکن است سندش هم ضعیف باشه اما موافق با مبانی فرقه ای باشه که ما بهش میگیم روایات معتبر یعنی اعتبار داره برای احتجاج و برای استناده به اون احتجاج داره مثلا شیعه شیعه را اگر در نظر بگیرید شیعیان روایات کلامیشون در کتب اربعه است مخصوصا کتاب کافی ما در کتاب کافی خب یه بخش داریم کتاب الهجه یا کتاب الیمان و از بخش کافی کافی کمی در بهارولنبار به تفصیل بیشتری البته بخش های روایت کافی وارد شده که با معیارهای شیعه یا این روایات صحیح هستندن یعنی مثلاق حدیث صحیح یا این روایات معتبران معتبرند. یعنی ممکنه حالا بعضی هاشون ضعیف باشه ولی متنشون که ما نگاه میکنیم موافقه با مبانی کلامی شیعه است که بهش میگن حدیث معتبر ولو که حالا سندش ضعیف باشه این یه بخش از روایات کلامیه حتما در اهل سنتم چنین قضیه‌ای وجود داره یعنی مثلا در اهل سنتم اهل سنت میتونن به ما بگن که ما فرض بفرمایی قائل به رؤیت پروردگار عالم هستیم در روز قیامت بعد استناد بکنن به روایاتی در صحیح بخاری و از نظر اونا صحیح بخاری روایاتش صحیح باشه یا استناد بکنن به روایاتی در مسند احمد بن همبل گرچه حالا سندش ضعیفه ولی با مبانی پذیرفته شده شون یک موافقتی داشته باشه به طور کلی این یک رشته از روایات کلامیه که نزد فرقه ها و گروه ها یا سند صحیحی داره یا معتبره و به این روایات در بحثهای خودشون استناد میکنه یه بخشی از روایات کلامی از نظر شیعه و سنی حتما جز روایات مجعوله یا روایات ضعیف غیرقابل قابل استناده چون با مبانی پذیرفته شدن چون سازگاری نداره به عنوان مثال ما در شیعه یک جریان رو داریم به نام جریان قالیان قالیان قالیان در ارتباط با ائمه اطهار علیه السلام گاهی حرفایی میزدن که مصداقی از غلاو بوده روایات قالیانه اینا جز ای روایات کلامی مجعوله از نظرشیه روایات قالیانه جز روایات مجعول از نظر شیعیان حالا ممکنه بعضی از این روایات در اهل سنت هم اوصافی رو برای پیغمبر بگن از نظر مثلا اهل سنت مجعول باشن یعنی هر مکتبی میتونه به تناسب اون دستگاه کلامی خودش یک رشته از روایات کلامی رو عنوان حدیث مجعول اعلام بکنه من حالا مثال میزنم اگر که برادران اهل سنت ما به کتاب الموضوعات ابن جوزی مراجعه بکنن ابن جوزی البته حالا مثلا در خود ابن جوزی هم اختلافه بلاخره خود ابن جوزی هم این نیست که حالا حرفاش متفق قول باشد، ولی اونجا یه فصلی رو آورده در کتاب ابن جوزی که اعلام میکنه بعضی از روایاتی که در فضائل ابو عمر، عثمان و پاره ای از اصحاب پیغمبر وارد شده اینا روایات جعیه است یعنی اون معتقدی که چنین چیزهایی رو ما نمیتونیم به پذیریم به حدیث رسول الله نمونظیری یعنی یکی از مصادیق روایت جعلی که روایت کلامیه در شیعه و سنی فرق نمیکنه بخشی از روایات فضائل بخشی از روایات فضائل چه حالا درباره حضرت علی باشه یا ائمه ها یا چه درباره عمر باشه، عبوبک باشه بعض از اصحاب پیغمبره از نظر کارشناسان به انوان حدیث جعلی قدم داد شده منظور من این نیست که ذهن شما رو من به تمام روانا فضائل بدبین کنم مثلا ما که خودمون شیعه هستیم متقد هستیم که حتما علی علیه السلام فضائل راستیم دارد به نقل از رسول الله احتمالا سنیا هم معتقدند که برای اصحاب پیغمبر یک فضائل راستینی از ناهیه پیغمبر وارد شده ولی در عین حال شیعه و سنی باید هشیار باشد که در حوزه فضائل و رضائل ما انبوهی از روایات جعلی میتونیم داشته باشیم در مطالعه روایات کلامی این مطلب رو ما بهش باید توجه داشته باشیم امام علی علیه السلام در نهج البلاغه یک جمله ای رو می‌فرمایند که ما متوجه این بحث و اهمیتش میشیم. می‌فرمایند که هلاک یا رجلان دو گروه در مسیر من به هلاکت افتادند در مسیر قضاوت از من، تعریف از من به حلاکت افتادن یکی، از کنم خدمتون محبون آل آلش با غین ها بله، اون چیزی که منو دوست داره ولی در این حال درباره من مرتکب قلوب محبه ها بلی محبه ها. دو مبغذون قال کسی که زبان باز می کند به بدگویی اونم از موضع بغضی که به من می برزن. یعنی به همون نسبتی که یک کسی دشمنانه علی علیه السلام رو مذمت میکنه و این واقعا به حلاکت می به همون اسفت هم یه کسی که ادعای دوستی با علیه بلدی طالب کنه. اما این دوستی اون رو به غلوف می اونم به شکل دیگری هلاک بشه مهم اینه که انسان اعتدال رو رعایت کنه برای که اعتدال رایت بکنه اگر واقعا حدیثی هست صحیح و سند منبع معتبری داره تو این حدیث قابل ذکر، قابل استدلال و قابل احتجاجه ما عرض کنم خدمتون باید در نظر بگیریم که در دوره بنی اومیه و در دوره بنی افواس روایات کلامی زیادی متاسفانه جعل شده که بوی منافع سیاسی برای بعض از افراد یا در جریانات به مشام میرسه حتی مثلا ما یکی از مصادیق مهدی در شیعه اصیم متحده اصیم که امام حسن اسکری فرزندی دارن به نام مهدی که الان قایبه و انشاءالله روزی ظاهر خواهد شد و جهان را پر از عدل میکنه خیلی جالبه بدونید که منصور عباسی یه فرزندی داشت به نام مهدی بعد موی که میخواست از دنیا بره صدای فرزندش زد گفت که من تمام دشمنان رو و رقبای احتمالی تو رو قلع, قلع کردم. تو وقتی به خلافت میرسی هیچ مانعی و مشکلی برای بست و توسعه عدالت دیگه برسر را نیست عدالت رو برقرار کن که بشین مصداق مهدی که در روایات پیغمبر پیش شده بعد به ادهی از محدثان دستور داد که روایاتی جعل بکنن که مثلا مهدی هفتمین سنانه من از مردی به نام منصور است و حدیثش رو جعل کردن الان ما یه رشته روایات جعلی داریم در کتابهای حدیثی که مصدام مهدی موجود رو می کنه مهدی ابن منصور عباسی اینقدر مسئله کلام و عقایت می سبب جهد یک رشته روایاتی شده باشه آخرین نکته در این زمینه کار روایات کلامی در شیعه و سنیست روایات شیعه و سنی روایت کلامی شیعه و سنی دوتا کار کرد داره از قدیمم آلمان با این دوتا کار کرد از این روایات استفاده میکردن یک آموزش و اثبات عقاید در درسهای اقاید مثلا اصول اعتقادی یعنی ما خودمون مثلا به هم فرزندانمون به پیروانمون هر به فرزندانش و پیروانش برپایه روایات کلامی پذیرفته شده میتواند آب به آموزش عقاید و فرهنگ دینی اقدام بکنه که این کارکرد درون مذهبیه روایات کلامیه وقت کلامی یک کارکرد برون مذهبیم هم در کارکرد برون مذهبی اثبات عقاید خود در مقابل رقبا با استفاده از روایات کلامی مورد قبول رقبای مذهبی که این کار کرد کارکرد جدلی احتجاجی روایات کلامی کارکرد جدلی، احتجاجیه روایت کلامیه یعنی مثلا فرض کنید یه شیعه با یک سنی اینا بیان مناظره کلامی برقرار کنند چنانکه در قدیم خیلی شایع بود شاید الانم یه جاهایی برگزار بشه خب در این مناظره ها معمولا استناد شده به قرآن. و استناد می‌شود به روایات کلامی که حتی طرف مقابل هم قبول دارد مثلا فرض بفرمایید یک شیعه می‌بایست مسلخ باشه به کتاب‌های حدیثی اهل سنت و بگ در ش... مثلا شؤونات امیرالمؤمنین مقامات علی علیه السلام این روایات در کتاب شما وارد شده و با استناد این روایات این مقامات اثبات میشه و طرف مقابلش رو بذاره در یک منگنه یا او باید اعتبار کتب و روایات خودشون رو نفی میکرد که یک ضرری بود مثلایی که مثلا من بگم من مصند احمد بن انبر رو قبول ندارم خب یک خسارتیه که مثلا یک سنی بیاد سل اعتبار بکن از یک کتاب یا باید میپذیره یا باید در دلالت اون بحث میکرد که بله من این حدثو قبول دارم که پیغمبر گفته ولی بله شاید معناش این باشه و به همین سبک مسیر های مذهبی به پیش میرفته این میشه کار کرده دوم روایات کلامی علا بعضی از کتاب که در شیعه نوشته شده بر اساس این کار کرده مثلا المراجعات اگر شما به کتاب المراجعات سید عبدالحسین شرف الدین مراجعه کنید المراجعات شرف الدین صد و ده تا مکاتب است بین آقای شرف الدین که یک ارز کنم خدمتون عالم شیعه و یکی از علمای معاصر مصری که را با هم از طریق مکاتبه یه مسائل رو با هم رد و بدر کردن موجود هم مسائل کلامیه یا قدیر علامه مجلسی که اساس کتاب القدیر علامه مجلسی استفاده از روایات کلامی با این رویکرد جدلی الله اکبر ببخشید علامه امینی چند جلد فتاب القدیره اثر علامه امینی 12 مجلد عربیه ولی در حدود 20 22 جلد 23 جلد فارسی ترجمه کامل شده به زبان فارسی یعنی تقریبا هر مجلد عربیش که مثلا 400 500 صفحه است یه مقداری که حالا روان خاصن به فارسی ترجمش کنن حدودا دو جلد ترجمه فارسیش به اصطلاح جا گرفته اسم علامه مجلسی آوردم ببینید ما این, این مطلب رو در تاریخ حدیث براتون گفتیم و باید یادتون باشه معروف که میگن که کتاب عرشوت بهارولنوار یک کتابیه به منظور حفظ تراس شیعه یعنی مرحوم علامه مجلسی این کتاب نوشت که میراس حدیثی شیعه رو حفظ بکنه در اینقدر یه ویترینی برای کتابخانه حدیثی شیعه است. همونطور که الجامل کبیر سیوتی یه ویترینی برای کتابخانه اهل سنته خب اگر این هدف علامه مجلسی بوده چرا کتاب بهارولنگار حدود پنجه منبع از منابع اهل سنت رو هم استفاده کرده از جمله صحای سته مسند احمد بن حنبل تفاسیر مشهور اهل سنت اینا هم جزء مصادر بهارولنگونه این به این دلیله که کتاب بهارولنگوار در بخش های تواریخ ائمه علیه مسلم که میرسه و فضائلی رو از پیامبر بر مثل سردیز نقل میکنه میگه این فضیلت در کتب مخالفان ما همه هست یعنی یه بخشی از کتاب بهارولنبار میشه جامع منابع شیعه و سن و به کتاب یک روی کرده جدلی اتجهادی میده. لذا همواره متکلمان سعی می‌کنند برای اثبات عقاید خودشون دست به روی روایاتی یا دست بگذارند روی دلایلی که جناح رقیبم نمی‌تونه ردش کنه. پس بنابراین خود به حال منوارم که من گفتم از علامه مجلسی یه بخش هایش این رویکرد رو داره کتاب ابوقات الانوار از میرحامد حسین هندی کتاب معالم مدرس از علامه علامه سید مرتضی اسکری اینا جزء مشهورترین کتابهایی هستند که در این کتاب ها روایات کلاروی شیعه و سنی و مخصوصا روایاتی که شیعه قبول داره ولی اهل سنت نقلش کردن در کتاباشون اگر مراجعه کنید میتونید متوجه بشید خب این یک تتمعی از درس جایگاه حدیث در علم کلام که ما برای استفاده از روایت کلامی باید به این نقطه ها توجه داشته باشیم اما درس امروز من در خصوص جایگاه حدیث در تاریخ و مخصوص منم مخصود منم تاریخ اسلام میدونید ما داریم جایگاه حدیث رو در قلوب اسلامی براتون می کنیم من مطلب رو با این موضوع شروع می‌کنم که یکی از دانش‌های اسلامی که حدیقتن متأثر از حدیث و حدیث یک جایگاه خیلی خوبی در این دانش داره عبارت از علم تاریخ و منظور ما البته تاریخ اسلام سهم حدیث در تاریخ به سه شکل قابل است. به سه شکل سهم حدیث ما در تاریخ از نظر محتویه البته میتونیم خدمت شما عرض بکنیم یک تاریخ در معنای رویدادهای امتهای قبل از اسلام تاریخ در معنای رویدادهای امتهای قبل از اسلام یا های اقوام گذشته اقوام پیش از اسلام دو تاریخ در معنای حوادث تاریخی اسلام در دوران پیامبر و در دوران امامان مثلا فرض کنید ما میگیم جنگ بعد را. خب جنگ بعد یه حادثه مربوط به امت اسلامیه فرض کنید جنگ احزاب، جنگ نمیدونم، اهر فرض کنید هجت و هجت خب یه واقعه تاریخیه که در امت اسلامی در زمان پیغمبر اتفاق افتاده سه تاریخ در معنای سرگذشت پیامبر اصحاب تا به این و امامان معصوم امامان معصوم علیه سلام. یعنی در واقع ما برای تاریخ فعلا سه تا دامنه در نظر گرفتیم چون میخوایم صحنه حدیث رو در تاریخ بشه با نشون دیم می میگه مراد از تاریخ چیز تاریخ در این درس ما میتونه سه تا حوزه و سه تا دامنه رو داشته باشه از این سه تا حالت که گفتیم سهم حدیث در تاریخ چیه؟ خب رابطه حدیث با تاریخ از این سه مرتبه که گفتیم با مرتبه سوم رابطه قویتریه، قوی‌تریه با مرتبه دوم یک رابطه نسبتاً خوبیه حالا خیلی قوی هم نباشه ولی ما یه رشته اخبار تاریخی داریم که اصلا موضوعشون عبارت از وقایه صدر اسلامه گایی هم از قول پیغمبر میشه گایی هم از قول اعمه میشه. اما رابطه تاریخ رابطه حدیث با تاریخ به معنای اول یک رابطه نسبتاً محدودیه فقط در پاره از روایات شما ممکنه ببینید که پیغمبر اسلام مطلبی رو درباره قوم یهود و اخلاق یهود گفته باشه یا در روایات علمه علیه السلام ما میبینیم که ممکنه مطالبی درباره بعضی از پیانبران گفته باشه. حالا جالب که یه بخشی در کتابهای حدیثی ما وجود داره که روایات و مواعزی را روایات و مواعزی را از پیامبران گذشته مثلا مواعز ایسا مواعز از مواعظ موسا یه،, یه بخشی از روایات ما یک سری مواعظ از پیامبران گذشته است که اینو پیغمبر ما گفته یا امام باقر گفته امام صادق گفته به عبارتی ما یک عنوانی داریم به نام احادیث الانبیاء احادیث الانبیاء که از زبان رسول الله یا امامان بیان شده و این احادیث الانبیا که از زبان پیغمبر یا امامان بیان شده تعدادش هم قابل توجهه مثلا تعدادش 50 تا ست تا دیدستانی است بر اساس یک پژوهش علمی بالای هزار و مثلا دیمیس سی ما حدیث داریم که این در ارتباط با پیامبران قبل از پیغمبر اسلامه و حاکی موائز اوناست و اینگار پیغمبر و امامان ما شدن راوی با اجازه شما چند سال پیش در دانشگاه تهران در دانشگاه تهران یک دانشجوی دکتوری ما معمول شدند که با نگرش بر منابع حدیثی شیعه و سونی احادی سال را استخراج کنند و اینا رو طبقه بندی کنن موضوع بندی بکنن در قالب یه رساله دکتری ارائه بکنند. فرض زنن مثلا راجیب به محتوا و راجیب به سندشو چند درصدش مسنده، چند درصدش مرسل فرض کنید چند درصدش ممکنه متاثر از اسرائیلیات باشه چند درصدش اصالت داره اعتبار داره تحقیق کردن و اصلا با این کارشون ایشون شدن دکتر یعنی فارغ التحصیل دکتری شدن یه مثال خیلی خیلی ساده که شما میتونید بخشی از مواعظ امیاء گذشته رو در لسان روایات اسلامی ببینید کتاب توحفل اغول کتابی داریم یکی از دانشمندان شیعه در قرن چهارم نوشتن حسن بن علی شعبه هرانی کتابی دارن به نام توحفل اغول انعال رسول سب کتاب توحفل اغول به این شکل که وقتی که شما باز می‌کنید، مثلا مثلا موازی, موازی از پیامبر بعد امام علی، بعد امام حسین همیطور میاد تا امام حسین از بعدش در انتحاش هست مارویه موسا علیه السلام مارویه ایسا علیه السلام مارویه داوود علیه السلام و اینا یک شخصیت که در یک تاریخ های زنگی تاایی یا حالاتی ازشون و یک ازشون برای ما بابی مه. پس بنابراین ما اولین کاری که اینجا به شما کردیم این بود که بگیم اخبار تاریخی تو چه زار ایوارد شده. سه عضه معرفی کردیم. یکی آنچه که مربوط به اقوام گذشته میشه. دوم ار شود آنچه که مربوط به تاریخ اسلام و حوادث تاریخی میشه. سوم آنچه که در ارتباط با شخصیت پیغمبر و امامان وارد شده. خب این سه حوزه و پیوندش با حدیث موجب میشه که ما احادیث رو از جهتی بتوانیم بر دو نو تقسیم بندی بکنیم چون الان بحث رابطه حدیث با تاریخ ما بتوانیم احادیث رو از جهتی بر دو از شبت تقسیل مندی بکنیم کنیم ما میگیم اخباری که در کتاب های و سنی وجود داره یک روایت های دینیست یا اخبار دینیست دو روایات تاریخی یا اخبار تاریخی من همین رو عرض می کنم برایتون بعد می برای ببین اخبار دینی از نظر ما اخباری که صندمون به معصوم میرسه حتی اگر درباره آبسمور باشه اینا خبرهای خبرهای دینیه. یعنی یه پیغمبر با وجود و معصوم یه چیزی بگه، ما به این خبر میگیم خبری دینی. چون شاخصش میگه از قول معصوم پای. بعد یه رشته اخبار ما داریم که اینا اخبار تاریخی هستند. حتی اگر درباره رسول الله باشه. در اخبار تاریخی سند می‌رسه به صحابه و تابعین. حتی اگر به اصطلاح موضوع خبر امام صادق باشه موضوع خبر مثلا امام بابه باشه مثلا فرض کنید اگر که یکی از محاسنان امام صادق علیه السلام بگه که امام صادق رو من دیدم از ترین افراد زمانش بوده یعنی داریم اشاهدات خودش رو راجع به امام صادق بیان میکنه یا مثلا یک نفر بیگه رسول الله آدم متواضعی بود با بردها نشست و برخاست میکرد و هیچ کس نمیتوانست در سلام گفتن صدقت به بر این مرد وقتم وارد مجلس میشد هر جای خالی میدید دید این خبر خبر تاریخیه چون سندش میرسد به یک صحابه یا تابعی پس ما داریم اخباری که محتوای تاریخی دارن بعضی هاشون جنبه دینی دارن چون سندشون به معصوم میرسه بعضی هاشون جنبه دینی به معنای از معصوم نمیرسن استراحه ما بهشون میگیم روایت چی تاریخی یعنی یک شخصیت عرصه تاریخی اصیلی که در اون تاریخ زندگی کرده یه واقعی رو دیده و برای ما گفته خب درست رو تا همینجا متوقف میکنیم و استغادی میکنیم انشالله از نماس و برمیگرم اداره میگیم برد رابطه حدیث با تاریخ یا نقش حدیث در تاریخ یا رابطه حدیث با تاریخ خب رابطه حدیث با تاریخ رو از دو جهت میشه که یک از جهت محتوایی دو از جهت روشی می تونیم بگیم که حدیث از دو جهت بر تاریخ اثر گذاشته حدیث از دو جهت بر تاریخ اثر گذاشته یکی از جهت محتوایی یکی از جهت روشی از جهت محتوایی یعنی بسیاری از احادیث محتوای گزارش‌های تاریخی شدند بسیاری از احادیث محتوای گزارش‌های تاریخی شدند یعنی در حدیث اومده تو محتوای تاریخ به قول معروف اثر خودش بوده یا اصلاً متن کلام بیننبر یا امام یه واقعه‌ای رو داره برای ما گزارش می‌کنه این بسیاری از احادیث حسن محتوی بزاره‌های تاریخش رو در این رابطه‌ای که حدیث بر تاریخ گذاشته یعنی واقعه‌ای در محتواش اثر گذاشته خب ما حقیقت مثلاً مثل این که مثلاً واقعه‌ایه قدیر یا واقعه مثلا اهد واقعه بدر از زبان پیامبر یا امام معصوم یا صحابه مشاهد بیان شود دن که ما حدیث صحابه رو میگیم حدیث موقف حدیث موقف صحابه که اصلا خودش دو جنگ بوده بنده خودا این جریان جنگ رو برای ما تحریف میکنه خب این هم حدیثه حدیث تاریخی که هست اگر حدیث دیگه میده حدیث تاریخیه یا اصلاً واقعی از زبان بیغمبر از زبان امام روایت بشه که مثلا فرض میخواه شما نحجر بلاقر نگاه کنید محتول براه. امام علی علیه السلام شرایط جامعه عرب رو. دوره جاهلی را با بیانات خودشون بیان میکنه، شخصیت پیانور توصیف میکنه، شخصیت برخی از صحابه رو تبییم می‌کنن نمونه اینان خب اینا روایاتی که محتواش شده گزاره‌های طالب در محجم بلاقا ما فراهم داریم بعد این نعمل حدید یه ای داره یه اهلی از صحاب مثل امام علی نتبانسته افعاد شخصیت پیغمبر رو برای ما باید خود امامالی علیه السلام میشه یک منبع حرفای امامالی میشه یک منبع منبعی برای شناساندن اوضاع جامعه عرب اوضاع جامعه جاهلی آمدن پیغمبر تأثیراتی که پیغمبر بر مردم گذاشت تحولاتی که ایجاد کرد شما اگر بخواهید وضعیت تاریخ و صدر اسلام رو و شخصیت های رو درد بکنید من به شما میمی که از منابش نحجرگانه هاست ناخود باروغ هم از نظر ما سخنان امام علیه حدیثش هم سنیان میگن حدیث موقوف چون قول صحابه میگن حدیث موقوف شیعیان میگن احادیث امام علی حدیث مرفوعه حدیث دینی چون قاعده به قسمتش هم بر اساس این تقسیم بندی که کردن این از نظر ما که اصلا بسیاری از احادیث مبای گزارهای چی شدن تا اما از نظر غلشی میدونید که یکی از عرقان حدیث سند دیگه حدیث چند طورت میداره؟ ها؟ سند و دلالت سند و منتر آره یک منتر دو چی؟ سند در حقیقا سند با احادیث هویت پیدا کرد با متن روایت معصومین به قول برورد پیدا کرد یکی از ارکان حدیث سندشه حدیث توانست سند را بر تاریخ تحمیل بکنه یعنی توانست به مورخین بگه شما گزاره های تاریخین ببینید با سند روایت شده یا با سند روایت نشده به عبارتی بعد از کتاب‌های حدیثی دومین جایی که شما کاربرد سند رو میتونید ببینید در کتاب‌های تاریخیه و این تأثیریه که تاریخ از حدیث گرفته یعنی مورخان برای اطمینان از درستی گزارهایی که مربوط به صدر اسلام و شخصیت‌های اسلامی بود تحجیف دادن که این گزاره ها رو طی یک سند در یافت بکنن الان شما به سیره ابن اصحاب سیره ابن هشام که برگرفته از همون سیره ابن اصحابه مراجعه بفرگویی یا تاریخ تبنی اینا تاریخ های ممکنه نهایتاً سند بقایش رو به پیغمبر نرسده برس به یک صحابه، برس به یک تابعی ولی همون گزاره صحابی و تابعی تایی یک سندی میرسه به دست تبریم یعنی تبریم عنوانی مورخ قرن اول قرن و عوائل قرن چارم گزاره های تاریخی رو با سند دریافت میکن و از این جهت در واقع این تعصیریه که حدیث از جهت رشی بر تاریخ گذاشته و ما این رو باید بهش توجه داشته باشیم اما من اینجا برای شما نوشتم که بسیاری از احادیث محتوای های تاریخی شده اند و مثالم زدم که گزاره های تاریخی ما از زبان پیغمبر یا امام یا صحابه هر شبت بیان شده معبول اقاقا تا به هم میتونه بگیم وقایه صدر اسلام و محاصر خودشون برای ما روایت کردن مشاهدات خودشون رو بیان کردن اینجا هم گفتم اخباری که در کتابهای مسلمانانه یا روایتهای دینی هم یا های چیه تاریخی با این تقسیم بندی که کردم براتون من برمان یه مطلبی که حالا میتونه یه مطلبی در یک پرانتز باشه میخوام یک حقیقت دیگه رو هم برای شما اضافه برای این مطالب بیدیو رابطه تاریخ با احادیث موجود در منابع حدیثی الان ما یک منابع حدیثی ده. مثلا سنیا های ست دارن شیعیان کتاب اربعی دارن یک پشت منابع حدیثی هم در دوره متأخرین داریم یک پشت منابعی هم در دوره معاصر شیعه و سنی رابطه تاریخ با احادیس موجود در منابع حدیثی چیست؟ چیست؟ یک از نگاه مسلمان دو از نگاه خاورشناس از نگاه مسلمان بخشی از روایات بخشی از روایات موجود در منابع حدیثی ارزش تاریخی دارم یعنی در مورد خاص وقایع تاریخ اسلام است ببینید مثلا ما در دل سعی بخاری کتاب جهاد داریم ما در دل عرشبت سعی بخاری عرشبت کتاب المغازی داریم کتاب المغازی اخبار جنگ های پیغمبره. در دل عرشبت سعی بخاری در دل سعی مسلمه ما در دل بهار انوار تاریخ زندگانی پیغمبر رو داریم اسم هم هست تاریخ و سیدنا تاریخ و نبیه نا. خب اما مثلا کسی کتاب و رو که در دل جوامع اربعه هست شیعه سنمی کسی کتاب و سلات رو بهش نمیگه کتاب مخصوص مسائل تاریخی از ما کتاب و یک مجبوعی از روایات صرفا برای که ما یک عبادتی را به نام نماز خوب یاد بگیریم درسته ولی یه بخشی از جوامه حدیثی ما ارزشش چی دارن؟ تاریخی دارن اعنی از این که ناقل اون رسول الله باشه یا صحابه و تابعیم اما از نگاه خواهرشناسان خواهرشناسان که حساسیت دینی ما رو ندارن اونا که اصلا به کتاب مسلمین مراجعه نمی که روایت کتاب و رو بخونن نماز یاد بگیرن اون کار به از طرفی برای پیامبر هم که شخصیت قدسی و دینی غایب نیستن خوهرشنسان پیغمبر رو ممکنه یک ناویقه بپندارن یک مسلح بپندارن یک رهبر خردمند بپندارد از نگاه خواورشناسان همه اخبار موجود در منابع حدیثی جمعه منبعی در شناخت تاریخ اسلام دارد یعنی خاورشناسان به حدیث یعنی که حدیث ها به, حدیثا، به منبعی در شناخت اسلام یعنی تاریخ اسلام مراجعه میکنه بهبارتی میخوام این مطلب رو براتون بگم البته ما الان درسی به نام حدیث و مستشرفان نمیگیم و نمیخوام بگیم ولی یک نکته کوتاه برای شما می کنم اولین موضوعی که مورد توجه مستشرفان قرار گرفت برای شناختن مثلا فرهنگ مسلمی پدیده اسلام بود و در پدیده اسلام مهمترین مثلا شخصیت رسول الله. یعنی رسول خدا آمدند و دینی به نام اسلام حال آوردند و برای خواهرشن اصلا شناخت اسلام و شناخت شخصیت هیغنبر که آورنده این بود موضوعیت میشه کرد وقت اونا برای شناخت اسلام و شخصیت رسول الله بسنده نکردند به تاریخهای رسمی مثلا سیرای ابن یک تاریخ رسمیه تاریخ تبری یک تاریخ رسمیه تاریخ ابن یک تاریخ رسمیه اونا برای شناختن اسلام و آورنده اون بسنده نکردن فقط به کتاب تاریخی بلکه به کل کتابهای روایی هم مراجع کردن یعنی کل کتابهای روایی رو به مصابه یک منبع تاریخی در نظر گرفتن ببینید اوج رابطه حدیث و تاریخ اینجاست من نمیخوام بگم نگاه خواهرشی رو ما قبول داریم ها. اصلا ولی اوج رابطه حدیث و تاریخ اینجاست که حدیث منتبق میشه به تاریخ یعنی تمام روایت های ما میشه یک گذاری تاریخی حتی اگر اون روایت فقهی باشه حتی اگر اون روایت در موضوع زکات باشه در موضوع جهاد باشه این نگاه نگاه کارنشناسانه رابطه تاریخ با حادثی موجود در منابع حدیثی از نگاه مسلمانان، بخشی از روایت موجود در منابع حدیثی ارزش تاریخی داره روایاتی که از قول پیغمبر مثلا فرض کنید الان اولین حدیث صحیح بخاری که ناقل اون آیشه هست یک روایت تاریخیه یعنی مبعث رسول الله برای ما در یک تاریخی، در یک زمانی، در یک مکانی گزارش کرده اسم کتابش هم از کتاب و بدعن کتاب آغاز وعیه ما از این کتاب ها در صحیب و خالی و زیاد داریم کتاب المغازی داریم کتاب الجهاد داریم گاهی مثلا کتاب و فضائب داریم برای شناخت شخصیت های اصحاب تا به خب بخشی از روایات موجود در منابع حدیثی ما ارز کنم خدمتون اینا ارزش تاریخی داره یعنی گزم. محتواش گزارای تاریخیه الان در کتاب الکافی ما یه بخشی داریم از کتاب ال در کتاب ال حجت به اصطلاح باب‌های تاریخ ائمه بده از امام علی بگیرید تا امام دوازدهم تا حالا غایبه حتی هاش ذکر شده حتی مثلا روایات مربوط به مقاماتشون که حالا با چه تعبیری به امامت برگزیده شدن ذکر شده از این مفصلتر محاون انواره که تاریخ زندگی پیامبر و رو به تفکیک که داره در داخل یک کناب حدیثی این نگاه نگاه مسلمان که می‌توانند از منابع حدیثی در موضوعاتی به عنوان یک معخض تاریخی اعتماد کنند بعدم چه معخضی بهتر است کتاب‌های حدیثی که همه روایاتش با سنده و حتی می‌شه سندهاشو ارزیابی کرد به سعی و حسن و مبستم و ضعیف اما به هر حال مسلمان‌ها به بخش‌هایی از منابع حدیثی، به چشم تاریخ و منبع تاریخی نگاه می‌کنن مخصوصا توضع تو حوزه اخلاق ولی به خواهر که می‌رسیم، قضیه چی میشه متفاوت میشه اونا اصلا اصلاً صحیحه فقط در حد منبع تاریخی می‌دونن یعنی منبعی برای شناخت تاریخ کافیه کافی که میرسن فقط عنوان یک منبع تاریخی بهش می‌گاه می‌کنن البته این نگاه‌مونها رو ما قبول نداریم ولی میخوام بگم اوج رابطه‌ی حدیث و تاریخ اینجاست که هر حدیثی بشه یک اطلاعات تاریخی این دیگه اوجشه که حدیث می‌فته روی تاریخ تمام روایات سعی بخاری، سعی مسلم، سنن عربه‌ی همه‌یش هم یه گزاره های تاریخی حتی روایات فقی میشن گزارهای تاریخی برای چی؟ برای که ما را با تاریخ پیدایش فرق و مذاقب فقهی آشنا می بعد حالا دیگه مستشریخان بعضی هاشون البته یک جملاتی دارم که خب اون جملات برای ما مسلمان هم خیلی غیرقابل تحمله اونا میگن که تازه اخبار دروغین مسلمانان اخبار راستشون که خب ارزش خودش رو داره اخبار جعلی و دروغین موجود در کتابهای مسلمانان هم از نظر شناخت مثلا تاریخ و اختلافات مسلمان با هم کشمشکش هایی که با هم داشتن مجادلاتی که با تازه اونا هم مفیده یعنی هم به دنبال راستاشن هم به دنبال دروغاشن و بگم ما از اخبار جعلی مسلمانان هم استفاده میکنیم برای پی بردن به اختلافات و کشمکش ها و درگیری ها چرا؟ چون از نظر اونها هر گروهی از گروه های مسلمان برای تصدیف خودشون یک رشته روایات رو جعل کردن یعنی جعلهای فرقی هم از اخبار جعلی استفاده می هم از اخبار صحیح و درستی که در کتابهای مسلمانان آخرین مطلبی که میتونم در بحث رابطه حدیث با تاریخ شما بگم به طور خلاصه چون در انتهای زمانم برادونیم بر منابع منابع روایت تاریخی. یعنی ما دوباره تاریخی رو در چه منابعی این توانی ارث کنم خدمت تو داشته باشیم. من به طور کلی بگویم مصادیق منابع حدیثی در موضوع تاریخ مصادیق منابع حدیثی در موضوع تاریخ من چند دسته منبع رو نام میبرم یک فصلهایی فصلهای از جوامع و کتابهای حدیثی شما اگر به جوامع و کتابهای حدیثی شیع و سندی مراجعه بفرمایید یک فصلهایی، یک بابهایی از جوامع و کتابهای حدیثی قدیم و جدید اینا در حقیقت اخبارش جنبه تاریخی داره چند بار مثال زدم گفتم مثلا دردن سعی بخاری با کتاب الجهاد داریم کتاب المغازی داریم کتاب و نبی و شماهر و نبی از کتاب ها داریم خب این اطلاعاتش تاریخیه یا مثلا نهجولولاغه که برای شما مثال زدم شما نهجولولاغه رو میتونید به مسابه منبعی برای شناخت تحولات دوران پیغمبر و تحولات دوران خود امامدی مثلا جنگه هایی که ایشون کردن یکی از منابعش خود نهجولولاغه است بعد امسال ابن اول حدید این جنبر و حسابی پر رنگش کردن چون ابن اول حدید مسلط به تاریخ اسلامان بوده در شرح خودش این یک. دو کتابهای های رجالی تراجم با روی تاریخی مثلا فرض کنید توقعات انده در اهل سنت یا اختیار و معرفت رجال که مال کشی و توصیه این در با روی کرده شیعه است چه در این کتاب؟ چه در این کتاب؟ شما هم تا احوال صحابه و طابعین رو به شکل مسند میبین یعنی این دو کتاب مملو از روایات دینی و تاریخی در شناخت اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه چنانکه که من اضافه میکنم به این موضوع کتاب علمو الکبیر کبیر تبرانی جهت شناخت سیره صحابیان پس این در نوع دوم از منابعیه که ما منابع حدیثیه ولی جنس تاریخ توش زیاده سوم از چون کتابهای مستقل احادیس و اطلاعات تاریخی به شکل مصنب کتاب مستقل عقادیست و اطلاعات تاریخی به شکل مصنف از این دست من اشانیم کنم به سیره ابن اسحاق سیره ابن هشام تاریخ تبری ارشاد شیخ موفی اعلا ورا تبری تبرسی شما در این کتاب ها از شیعه و اهل سنت میتوانید برز کنم مطالب تاریخی رو با احادیثی ببینید که بعضیش از قول محصول نرونچه بعضیش از قول سابو تابعیم یعنی احادیث دینی، تاریخی، به شکل مصنب یعنی هیچی که از حدیث نداشته باشه سند رو از حدیث گرفته از جهت بشید از جهت زمنی که خیلی هاشم محتواشم محتوایی که از قول معصوم یا صحابیان نقل میشه و چهارمین موردی که میخوام برای شما به مثال بزنم کتب تاریخی غیر مصند که محتوای خود را از یاد گرفتن کتب تاریخی غیر مصند که محتوی خود را از نبایات گرفتن مثلا اونا بکنید تاریخ افنکسیر تاریخ افنکسیر همون تاریخ تبریه منتاب پاک و پاکیزه شده اخبار ضعیفش حذف شده و سندش هم قیچی شده یعنی تاریخ اسلام متأثر از تاریخهای معسور و مسند منتها دیگه چون دوره متأخرینه در دوره متأخرین دیگه رفتن به سمتی که تاریخ ها تاریخ های معسور کنن پاک و پاکیزه بکنن با حذف سند یا مثلا مروج و زهر سنن مسئولی یا از قرب خدمتون تاریخ گرد یعنی. اینا در حقیقت تاریخ های شکل چارمه ما اثر حدیث رو در محتوی این گزاره ها میتونیم جستش رو بکنیم گرچه دیگه بلا حاضره اون سندها رو یواشواش حسب کردن که کتاباشون خیلی مفصل و قطور نشدن اشانا که از درس این استفاده بودی البته من یه مطالب ریز دارم براتون بگم ولی توی این بقاله هست چون این کتابی که قبلا دیده بودید ببینید این کتاب یه مجموعه ای از متخله های حدیثی دانشنامه جهان اسلام و یه بخشیش عرض کنم رابطه ی حدیث با یه رشته از علوم یا واقعیت هایی که ما داریم اینجا حدیث و قرآن، جایگاه قرآن در جوامع حدیثی بعد حدیث و تفسیر، حدیث و کلام که امشب تتم گفتم حدیث و اخلاق که گفتم همین بشار کنده اینجا آره، آره،, آره همین بشار کنده، حدیث و فلسفه حدیث و تصوف ارفان، حدیث و تاریخ که امشب درس دادم. من حرفو که زدم خیلی هاش اونتونیست. خودتون وقتی که بخونید متوجه خواهید شد. بلاخره من اینجا که میگم با اشراف بر یک رشته مسائل براتون میگم. مثلا این چیزی که من را روی منابع حدیثی در موضوعات تاریخ از دو نواق گفتم اینجا اصلا اشاره نشده. اینجا از ابداعات خودمه که با استفاده از تجربه هم گفتم. ولی خب بخشایی از حرفی منم جدن است. من هم جدن توی مقال من خودم قبل از که بیا بسر کلاس اینو میخونم و میام بعد زمینشت میکنم با یک رشته اطلاعاتی که از در زیر داشتن خب از درس امشب. خدا حافظ